مصنوی معنوی مولوی برنامه 172 در بیان آنکه دوزخ گوید که کنطرۀ سرات بر سر اوست ای مؤمن از سرات زودتر بگذر زود بشتاب تا عظمت نور تو آتش ما را نکشد جز یا مؤمن و نورکه نورک ان ناره، زاتش عاشق از این رو ای صفی می شود دوزخ ضعیف و منتفی گویدش بگذر سبک ای محتشم ورنه زاتش های تو مرد آتشم کفر که کبریت دوزخ اوست و بس بین که می پخساند او را این نفس زود کبریتت بدین سودا سپار تا ندوزخ بر تو تازد نه شرار گویدش جنت گذر کن همچوباد ور نگردد هر چه من دارم کساد که تو صاحب خرمنی من خوشچین من بوته تو بلایت های چین هست لرزان زو جهیم و هم جنان نه مرین را نه مرآن را زو امان رفت عمرش چاره را فرصت نیافت صبر بس سوزان بود و جان بر نتافت مدت دندان کنان این می کشید. نارسیده عمر او آخر رسید. صورت معشوق زو شد در نهافت. رفت و شد با معنی معشوق جافت. گفت لبسش گرز شعر و ششتر است. اعتناق به خوشتر است من شدم اریان زتن او از خیال می خرامم در نهایات الوسال این مباحث تا بدین جا است. هرچه آید زین سپس است. بر بگویی بر بکوشی صد هزار هست بیگار و نگردد آشکار تا به دریا سیر اسب و زین بود بعد زینت مرکب چوبین بود مرکب چوبین به خشکی ابتر است خاص آن دریایان را رهبر است این خموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. هر خموشی که ملولت می کند، ناره عشق آنسو میزند. تو همه گویی عجب خاموش چراست؟ او همه گوید عجب گوشش کجاست؟ من نعره کار شدم او بی خبر تیزگوشان زین سمر هستند کر آن یکی در خواب نعره می زند صد هزاران بحث و تلقین می کند این نشسته پهلوی او بی خبر خفته خود آن و کر زان شور و شر وان کسی کشمرکب چوبین شکست، غرقه شد در آب، او خود ماهی است. نه خموش است و نه گویا نادر است. حال او را در عبارت نام نیست. نیست زیندو، هر دو هست آن بلعجب. شرح این گفتن، بروناست از ادب. این مثال آمد رقیق و بی لیک در محسوس از این بهتر نبود متوفا شدن بزرگین از شهزادگان و آمدن برادر میانین به جنازه برادر که آن کوچکین صاحب فراش بود از رنجوری و نواختن پادشاه میانین را تا او هم لنگ احسان شد. ماند پیش پادشاه. صد هزار غنایم غیبی و عینی بدو رسید از دولت و نظر آن شاه. مَعَ تَقْرِیرِ بَعْذِهِ کوچکین رنجور بود و آن وسط بر جنازه آن بزرگ آمد فقط شاه دیدش گفت قاصد که این کی است؟ که از آن بهرست و این هم ماهی است؟ پس معرف گفت پور آن پدر این برادر زان برادر خارد تر شه نوازیدش که هستی یادگار کرد او را هم بدین پرسش شکار از نواز شاه آن زار هنید در تن خود غیر جان جانی بدید در دل خود دید عالی غلغله که نیابد صوفی آن در صد چله. عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت پیش او چون نار خندان می شکافت. زره زره پیش او همچون قباب. دم بدم میکرد کرد گون فتح باب. باب گه روزن شدی گاه شعا خاک گه گندم شدی و گا سا در نظرها چرخ بس کهنه و قدید پیش چشمش هردم خلق جدید روح زیبا چون که وار است از جسد از قضا بیشک چون این چشمش رسد صد هزاران غیب پیشش شد پدید آنچه چه چشم مهرمان بیند، بدید. آنچه چه او اندر کتاب برخانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. از غبار مرکب آن شاه نر، یافت او کهل عزیز در بسر. برچون این گلزار دامن می کشید، جز و جزوش نعرزن حل من مزید. گلشنی کز از باقل روید یک دم است. گلشنی کز از عقل روید خرم است. گلشنی که از گل دمد گردد تباه. گلشنی از دل دمد و فرحتا. علمهای با مزادانستمون، زان گلستان یک دوسه گلدسته دان زان زبون این دوسه گلدسته که در گلزار بر خود بسته آنچنان مفتاها هردم هر دم بنان می فتد ایجان دریغا ای از بنان وردمی هم فارغ زنان گرد چادر گردی با عشق زنان باز استسقات چون شد موج زن ملک شهر بایدت پرنان و زن مار بودی اجده گشتی مگر یک سرت بود این زمانی هفت سر اجده های هفت سر دوزخ بود هر ستو و دوزخ فخ بود. دام را بدران، بسوزان دانه را، باز کن درهای نو این خانه را. چون تو آشق نیستی، ای نرگدا، همچو کوه خبر داری صدا. کوه را گفتار کی باشد زخود، عکس غیر استان صدا ای معتمد گفت تو زانسان که عکس دیگر است جمله احوالت جز هم عکس نیست خشم و زوقت هر دو عکس دیگران شادی قواده و خشم اوان آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد که دهد او را بکینه زجر و درد تا بکی عکس خیال لامعه جهد کن تا گرددت این واقعه تا که گفتارت زهال تو بود سیر تو با پر و بال تو بود سید گیرد تیر هم با پر غیر لاجرم بی بهرست از لحم تیر، باز سیدارد، بخود از کو سار، لاجرم شاهش خوراند، کب کو سار. منطق کزوه نبود از هواست، همچو خاک در هوا در هباست، گر نماید خاجر را این دم غلط، زوال و نجم برخان چند خط. تا که ما ینتق محمد ان هوا این هوا الا به وحی احتوا. احمدا چون نیستت از وحی یاس، جسمیان را ده تحری و قیاس، که ضرورت هست مردار حلال که تحری نیست در کعبه وسال بی به تحری و اجتهادات حدا هر که بدعت پیشگیرد از هوا همچو آدش بربرد باد و کشد نه است تا تختش آد را باد است هم مال خزول، همچو بر در کف مرد اکول، همچو فرزندش نهاده بر کنار می برد تا بکشدش قصابوار وار. آد را آن باد زستکبار بود، یار خود پنداشتند، اغیار بود. چون بگردانید ناگه پوستین شان بشکست آن به اصل قرین باد را بشکن که بس فتنه است باد پیش از آن کت بشکند او همچو آد هود دادی پند که پر کبر خیل برکند از دستتان این باد زیل، لشکر حق است باد و از نفاق چند روز با شما کرد اعتناق، او بسر با خالق خود راست است، چون عجل آید برارد باد دست، باد را اندر دهن بین رهگذر. هر نفس آیان روان در کر و فر. حلق و دندان ها از او ایمن بود. حق چو فرماید به دندان درفتد. کوه گردد ذره باد و سقیل. درد دندان داردش زار و علیل. این همان باد است. کیمن می گذشت بود جان کشتو گشت و مرگ کشت دست آن کس که بکردد دست بوس وقت خشم آن دست می گردد یا رب یا رب یارب برارد اوز جان که ببر این باد را ای مستعان، ای دهان، غافل بودی زینباد رو از بون دندان در استغفار شو چشم سختش عشقها باران کند منکران را درد الله خان کند چون دم مردان نپذرفتی مرد، وحی حق را هین پذیرا شو ز درد. باد گوید پیکم از شاه بشر، گه خبر خیر آورم، گه شور و شر. زان که معمورم، امیر خود نیم، من تو غافل ز شاه خود کیم، گر سلیمانوار وار بودی حال تو چون سلیمان گشتمی حمال تو آریستم گشتمی ملک کفت کردمی بر راز خود من واقفت لیک چون تو یاغی من مستعار می کنم خدمت تو را روزه سچار پس چو عادت سرنگونی ها دهم ز تو یا غیانه برج هم. تا به غیب ایمان تو محکم شود آن زمان کیمانت مایه غم شود آن زمان خود جملگان مؤمن شوند. آن زمان خود سرکشان بر سر دوند آن زمان زاری کنند و افتقار همچو دزد و راهزن در زیر دار لیک گر در گردی مستوی مالک دارینو، و شهنه خود تویی شهنگی و پادشاهی مقیم نه دروزه و مستعار است و سقیم رستی از پیکار و کار خود کنی هم تو شاه و هم تو تبل خود زنی چون گلو تنگ آورد بر ما جهان خاک خوردی کاشکی حلق و دهان این دهان خود خاک خار آمده است لیک خاک را که آن رنگین شده است این کباب و این شراب و این شکر خاک رنگین است و نقشین ای پسر چون که خردی و آنها لحم و پوست، رنگ لحمش داد و این هم خاک کوست. همز خاک بخیه برگل می زند، جمله را هم باز خاک می کند. هندو و قفچاق و رومی و هبش، جمله یک رنگند، اندرگور خوش، تا بدانی کن همه رنگ و نگار, جمله رو پوش و مکر و مستعار. رنگ باقی سبغت الله است و بست, بس. غیر آن بربستدان همچون جره است. رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین، تا ابد باقی بود بر آبدین رنگ شک و رنگ کفران و نفاق تا ابد باقی بود بر جان آق چون سیاه فرعون دغا رنگ آن باقی و جسم او فنا برقفر روی خوب صادقین، تن فنا شد وان بجا تا یوم دین. زشت، آن زشت است و خوب، آن خوب و بس، دایم آن زهاک و این اندر ابس خاک را رنگ و فن و سنگ دهد. تفل خویان را بران جنگ دهد. از خمیر اشتر و شیر پزند. کودکان از حرس آن کف می گزند. شیر و اشتر نان شود اندر دهان در نگیرد این سخن با کودکان. کودک اندر جهل و پندار و شک است. شکر باری قوت او اندک است. طفل را استیزه و صد آفت است. شکر اینکه بی فن و بی قوت است. وای از این پیران طفل نادیب گشته از قوت، بلای هر رقیب چون صلاح و جل جمع آید به هم گشت فرعون جهانسوز از ستم شاکر کن ای مرد درویش از قصور که ز فرعونی رهیدی و از کفور شاکر که مظلومی و ظالم نی ایمن از فرعونی با حرفت ای اشکم تی لاف اللهی نزد کاتشش را نیست از حیزم مدد اشکم خالی بود زندان دیو کش غم نان مانع است از مکر و ریو اشکم پرلود دان بازار دیو تاجران دیو را دروی غریو تاجران ساهر لاشی فروش عقل ها را تیره کرده از خروش خم روان کرده ز سهر چون فرس کرده کرباس ز محتاب و غلص چون بریشم خاک را بر میتنند خاک در چشم ممیز میزنند چندلی را رنگ اوده میدهند بر کلوخی حسودی میدهند پاک آنکه خاک را رنگ دهد همچو کودک مان آن جنگ دهد. دامن پرخاک ما چون تفلکان در نظر مان خاک همچون کان، طفل را با بالغان نبود مجال، تفل را حق کی نشاند با رجال. میوه گر که نشود، تا هست خام پخته نبود، غوره گویندش بنام. گر شود صد ساله آن خام ترش، طفل و غوره است او بر هر تیز حش. گرچه باشد مو و ریش او سپید، هم هم آن تفلی خوف است و امید که رسم یا نارسیده مانده ام ای عجب با من کند کرم آن کرم با چنین ناقابلی و دوری بخشد این غوری مرا انگوری نیستم امیدوار از هیچ سو وان کرم می گویدم لا تی اصو. دائمان خاقان ما کردست تو. گوشمان را میکشد کشد لا تقن گرچه ما زین ناامیدی درگویم چون سلازد دست اندازان رویم. دست اندازیم چون از سیس در دویدن سوی مرعای انیس. گام اندازه و آنجا گام نه. جام پردازه و آنجا جام نه. زان که آنجا جمله اشیا جانی است. معنی اندر معنی اندر معنی است. هست صورت سایه معنی آفتاب نور بی سایه بود اندر خراب چونکه آنجا خشت بر خشت نماند نور مه را سایه زشت نماند خشت اگر زرین بود برکندنی است چون بهای به خشت وحی و روشنی است کوه بحر دفع سایه مندک است، پاره گشتن بهر این نور اندک است. بر برون کوه زد نور سمد، پاره شد تا در درونش هم زند. گرسنه چون برکفش زد قرس نان، و شکافد از هوس چشم و دهان، صد هزاران گشتن ارزدین از میان چرخ برخیز ای زمین تا که نور چرخ گردد سایه سوز شب ز سایه توست ای یاغی روز این زمین چون گاهواره تفلکان بالغان را تنگ می دارد مکان. بهر طفلان حق زمین را مهد خواند در گواره شیر بر طفلان فشاند. خانه تنگ آمد از این گهواره ها. طفلکان را زود بالغ کن شه ای گواره خانه را زیق مدار تا تواند کرد بالغ انتشار.